فصل هشتم بعد از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا می‌گشت و مجده پادشاهی خدا را اعلام می‌کرد دوازده هواری و عدهای از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشیها رهایی یافته بودند با او همراه بودند مریم معروف به مریم مجدلیه که از او هفت دیو بیرون آمده بود یونا همسر خوزا مباشر هیرودیس و سوسن و بسیاری کسان دیگر این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک میکردن وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن ایسا آمدن و جمعیت زیادی در اطراف او جمع شد مسئلی زده گفت برزگری برای بعض افشاندن بیرون رفت وقتی بعض پاشید مقداری از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند مقداری هم در میان سنگلاخ افتاد و پس از که رشد کرد به علت فقدان رطوبت خشک شد بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها بانها آنها روش کرده آنها را خفه نمود بعضی از بذرها در خاک خوب افتادند و روش کردن و صد برابر سمر آوردن. این را فرمود و با صدای بلند گفت اگر گوش شنوا دارید بشنوید شاگردان عیسی معنی این را از او پرسیدن. فرمود درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است. اما این مطالب برای دیگران در قالب مسل بیان می شود. تا نگاه کنن اما چیزی نبینند. بشنوند اما چیزی نفهمند معنی و مفهوم این مثل از این قرار است دانه کلام خدا است دانه‌هایی که در گزرگاه افتادند کسانی هستند که آن را می‌شنوند و سپس ابلیس میآید و کلام را از دلهایشان میرو باید. و ایمان بیاورند و نجات یابند های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی میمانند که وقتی کلام را می‌شنوند با شادی میپذیرند. اما کلام در آنان ریشه نمی‌دواند مدت ایمان دارند اما در وقت آزمایش های سخت از میدان به در می‌روند دانه‌هایی که در میان خارها افتادند کسانی دلالت می کند که کلام خدا را می‌شنوند اما با گذشت زمان نگرانی‌های دنیا و مال و ثروت و خوشی‌های زندگی کلام را در آنها خفه می‌کند و هیچ گونه سمری ثمری نمی‌آورند اما دانه که در خاک خوب افتادن، بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک میشنوند و آن را نگه میدارند و با پشت کار ثمرات فراوان به بار میآورند هیچ کس چراغ را روشن نمی کند تا آن را با تشت بپوشاند یا زیر تخت بگذارد برعکس آن را روی چراغ پایه میگذارد تا هر که وارد شود نور آن را ببیند، زیرا هر چه پنهان باشد، آشکار می شود، و هرچه زیر سرپوش باشد، نمایان می گردد و پرده از رویش برداشته می شود. پس مواظب باشید که چطور می زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد، اما آن کس که ندارد، حتی آنچرا که به گمان خود دارد، از دست خواهد داد. مادر و برادران ایسا به سراغ او آمدند، اما به سبب زیادی جمعیت نتوانستند به او برسند. به او گفتند مادر و برادرانت بیرون استادند و میخواهند تو را ببینند. عیسی پاسخ داد: مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را میشنوند و آن را به جا می آورند. در یکی از آن روزها عیسی با شاگردان خود سوار قایق شد و با آنان فرمود به طرف دیگر دریا برویم آنها به راه افتادند و وقتی قایق در حرکت بود عیسی به خواب رفت در این وقت طوفان سختی در دریا پدید آمد آب قایق را پر میساخت و آنان در خطر بزرگی افتاده بودند پیش او رفتند و بیدارش کرده گفتند ای استاد ای استاد چیزی نمانده که ما از بین برویم او از خواب برخاست و با تندی به باد و آبهای طوفانی فرمان سکوت داد. طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد. از آنان پرسید: ایمانتان تان کجاست؟ آنان با حالت ترس و تعجب به یکدیگر می‌گفتند: این مرد کیست که به باد و آب فرمان می‌دهد و آنها از او اطاعت می‌کنند؟ به این ترتیب در سرزمین جدریان که مقابل استان جلیل است، به خشکی رسیدن. همین که ایسا قدم به ساحل گذاشت، با مردی از اهالی آن شهر روبرو شد که گرفتار دیوها بود. مدت مدیدی نه لباسی پوشته بود و نه در خانه زندگی کرده بود، بلکه در میان مقبرها به سر به محض اینکه عیسی را دید، فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت، ای عیسی!» پسر خدای متعال، از من چه میخواهی؟ از تو التماس میکنم، مرا عذاب نده. زیرا عیسی به روح ناپاک فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیاید. آن دیو بارها برو حمله ور شده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده ها محکم نگاه داشته بودند. اما هر بار زنجیرها را پاره میکرد، دیو او را به بیابانها میکشانید. و این به آن سبب بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود درآورده بودند. دیوها از ایسا تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرستد. از غذا در آن نزدیکی گله بزرگ خوکی بود که در بالای تپه میچریدند و دیوها از او درخواست کردند که اجازه دهد به داخل خوکها بروند. ایسا با آنها اجازه داد. دیوها از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوکها رفتن و آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد. خوکبانان را که واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و اطراف آن رسانیدند. مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند. وقتی پیش ایسا رسیدن، مردی را که دیوها از او بیرون رفته بودند لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدن و حراسان شدند. شاهدان واقع برای آنان شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. عیسی از او پرسید اسم تو چیست؟ جواب داد لژیون. بعد تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود زیرا بسیار حراسان بودند. بنابراین عیسی سوار قایق شد و به طرف دیگر دریا بازگشت مردی که دیوها از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود اما عیسی به او اجازه نداد و گفت به خانهت برگرد و آنچرا که خدا برای تو انجام داده است نقل کن آن مرد به شهر رفت و آنچرا که عیسی برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد هنگامی که عیسی به طرف دیگر دریا بازگشت، مردم با جربی از او استقبال کردند زیرا همه در انتظار او بودند. در این وقت، مردی که اسمش یایروس بود و سرپرستی کنیسه را به احد داشت نزد عیسی آمد. خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او تقاضا کرد که به خانهش برود، زیرا دختر یگانش که تقریبا دوازده ساله بود، در آستانه مرگ قرار داشت. وقتی ایسا در راه بود، مردم از هر طرف به او فشار می آوردن. در میان مردم زنی دیده می شد که مدت دوازده سال مبتلا به خونریزی بود و با اینکه تمام دارایی خود را به طبیبان داده بود، هیچ کس نتوانسته بود او را درمان نماید. این زن از پشت سر آمد و قبای عیسی را لمس کرد و فورا خونروزی او بند آمد. ایسا پرسید، کی به من دست زد، همه این انکار کردن، و پتروس گفت، ای استاد، مردم تو را احاطه کردن و به تو فشار می آورن. اما عیسی فرمود، کسی به من دست زد، چون احساس کردم نیروی از من سادر شد. آن زن که فهمید شناخته شده است، با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد، و در برابر همه مردم شهر داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فورا شفا یافته است عیسی به او فرمود دخترم ایمانت تو را شفا داده است به سلامت برو هنوز گرم صحبت بودند که مردی با این پیغام از خانه سرپرست کنیسه آمد دخترت مرد بیش از این استاد را زحمت نده وقتی عیسی این را شنید به یایروس فرمود نترس فقط ایمان داشته باش او خوب خواهد شد هنگام ورود به خانه اجازه نداد کسی جز پتروس و یوحنا و یعقوب و پدر و مادر آن دختر با او وارد شود همه برای آن دختر اشک می‌ریختند و عزاداری می‌کردند عیسی فرمود دیگر گریه نکنید او نمرده خواب است آنان فقط به اون نیشخن می زدن چون خوب میدانستند که او مرده است اما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت ای دخترک برخیز روح او بازگشت و فوراً برخاست عیسی به ایشان فرمود که به او خوراک بدهند والدین او بسیار تعجب کردند اما عیسی با تاکید از آنان خواست که ماجرا را به کسی نگویند